بخش دهم ده هایدا گفت تو چرا اینقدر لاغر شده ای به کلی تغییر کرده بود یک هوا چاق شده بود درد و استخان و مفاصل نداشت می توانست به خوبی انگلیسی صحبت کند آن حراس و اندوه بچگان دیگر در چهره دیدن دیده نمی شد و لباس های بسیار قشنگی به داشت برای آیدین و ارحان یکی یک شلوار نخی کبود رنگ خارجی آورده بود که می گفت در آبادان همه از این شلوارها میپوشند پوشند و می گفت که دوروبرشان پر از آدمهای انگلیسی و فرانسوی است، امثال آقای لرد آنجا پر است مادر بهش گفت که چند بار خواسته است بیاید آبادان به او سر بزند در این مدت دلش پیش او بوده سر سفره در آشپزخانه و به خصوص شبها او را به یاد داشته. اما پدر را که میشناسد او هیچ وقت اجازه نمیدهد چاره چیست؟ زن ناچار است مطیع شوهرش باشد. میخواست آدا حتما باور کند که جایش خیلی خالی است برای همین سعی میکرد بهش رسیدگی کند. برای بچه‌اش سهراب تفنگی خریده بود که از سرش جرقه آتش بیرون میزد. پدر گفت عق تو کلهت نیست این بچه چه میفهمد که رفته ای تفنگ جرقه ای براش خریده ای آیدا هر سال پانزده روز به خانه ی پدر می‌آمد و حالا بار سوم بود مادر برای سهراب بلوز و ژاکت بافته بود و در مدتی که آیدا آنجا بود نمیگذاشت کهنه بچه را بشوید خودش می‌شست آیدا هم سعی می کرد خوشحال و سرحال جلوه کند از آن سکوت دیرینه درآمده بود اما غم عجیبی در ته چشمهاش موج میزد. به خصوص وقتی پدر با همون اخم و خستگی کار می آمد آیدا جز اینکه به بچه‌اش سرگرم شود بهش غذا بدهد یا اینکه که تاتی تاتیش کند و موهاش را شانه بزند کار دیگری نمی‌کرد و گاه گاه اگر میشد نگاهی زیر چشمی به پدر میانداخت. پدر می‌پرسید وضع استادخان‌ها چطور است و آیدا جواب می‌داد یک سالی می شود که درد رفت شده، اما هر ماه باید یک پنیسیلین قوی بزنم. دکتر خارجی آنجا زیاد است. آنشب آیدا وقتی به اتاق برادرهاش رفت، بیش از یک تخت خواب در اتاق ندید. اثری هم از کتاب و لباس آیدین نبود. گفت، مادر، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ مادر گفت که راستش پدر بحانه گیر شده و یک شب اتاق آن دو را عوض کرده است. اما برای اینکه آیدا قصه نخورد چیزی از ما و تعریف نکرد در نامه ها هم صلاح نمیدیده که چیزی بنویسد آیدا پرسید که پس آیدین شب کجا می خوابد و مادر بهش گفت آیدا دکمه یقهاش اش را آنقدر پیچانده بود که افتاد گفت دارند برادرش را دق مرگ می‌کنند لاغر شده شرشهاش همیشه خسته است و انگار از یک بیماری سخت رنج میبرد مادر گفت که آیدین دارد شاعر بزرگی می شود اما از وقتی استادش را سربهی کردند غمگین است و چقدر زندگی نکبتی شده آیدا تصمیم گرفت که اتاق آیدین را تمیز کند برای تنها پنجرش پشت سفید بدوزد. دستی به دیوارهاش هاش بکشد و از آن حالت انباری درش آورد گفت تو چرا اینقدر لاغر شده ای آیدین را بغل کرد و برد بیرون که براش چیزی بخرد چون شوهر آیدن نیامده بود گفته بود که دیگر پادران خانه نمیگذارد آیدا و بچه را می آورد و میرساند پانزده روز بعد دوباره می آمد و میبردشان در این مدت بچه بهانه پدرش را میگرفت گرفت، ایدا شیشه ها را پاک می کرد، پوشتری ها را می کوبید و با سبد حسیری برایش لستر درست میکرد. کرد. دستهاش مثل لبو سرخ شده بود و فرصت نداشت، موهاش را شانه بزند. آیدین با سهراب را در کوچه ها می گردند، کارخانه پنکسازی را نشانش میداد براش برایش خروزقندی می خرید و اصر وقتی برمیگشت بچه را در حالی که دست لای یقه آیدین فرو برده بود و در خواب خوشی فرو رفته بود روی تخت می خوابند. آن وقت بی آنکه اشتهایی به شام خوردن داشته باشد به زیر زمین میرفت روی تخت دراز میکشید و در پتوی قرمز رنگی که آیدا از چاه بهار براش آورده بود به خواب میرفت نیمهای شب وقتی همه می خوابیدند چراغ دیواری را روشن میکرد و کتابش را از زیر تخت بیرون میآورد و میخواند یا در دفترش دفرش یک شب در همان روزهایی که آیدا آنجا بود نزدیک نیمه شب آیدین صدای سرپایی های مادر را شنید گوش خواباند. صدای سرپاییهای مادر بود که حتما میخواست بهش سر بزند. اما وقتی سرک کشید در چارچوب در پدر را دید که پوستین بر دوش با خشم نگاه می کرد و می گفت عجب عجب هوا سرد شده بود بوی سرکه و آبغوره با بوی بخاری علایدین آدم را ازیت می کرد آیدین خودش را جم و کرد و نیم خیز ماند نگاهش به پاهای پدر بود که بالاخره می آید یا نه سرپایه‌های مادر را پوشیده بود و بی حرکت همانجا ایستاده بود آیدین نمیدانست دانست چه کند باز به لرزه افتاد و ورقهای کتاب صدای عجیبی می‌داد. سعی کرد با آن دستش جلو لرزه را بگیرد اما نمیشد. پدر آرام آرام از بلده پایین آمد شرخی زد. نفس عمیقی کشید و در حالی که سرش را تکان رفت لبهاش خشک و بنفش شده بود و انتظار می رفت که از عصبانیت کاری بکند آن وقت در آن سکوت کشنده گفت فعلا که اسحال شعر گرفته ای حالا بند بیاید خدا می داند و رفت آیدا گفت تو چرا انقدر لاغر شده ای؟ آیدین باز صحراب را بغل کرد و برد بیرون. براش خروز خندی و ماشین کوکی خرید. در کوچه ها گرداندش و از سراشیبی کارخانه پنکسازی بردش پایین. در آن چند روز که آیدا آنجا بود، آیدین به صحراب سرگرم شده بود. آیدا گفت، میخواهی یک بچه اینجوری داشته باشی؟ آیدین گفت، چطور؟ آیده یک دست موی جلو صورتش را با سرنگوشت ها خوابان پشت گوش و گفت یک دختر خوب براگت دیدم خانم آیدین گفت من تصمیم دیگری دارم آیده گفت چه تصمیمی؟ زده پرسید و بیان که چشم از آیدین بردارد با دست پشتری های سفید را چین می داد آیدین گفت میخواهم دور این زندگی را خط بکشم، بروم سراغ خودم. میدانی آیدا، دلم به استاد دلخونم خوش بود. پیش خودم گفتم چه نیازی هست که بروم دانشگاه، ولی حالا که او را سر به نیست کرده‌اند، می‌خواهم بروم تهران، اتاقی اجاره کنم، درسم را بخوانم. این استاد دلخون خیلی به من امیدوار بود، من هم پشتم گرم بود. دو روز بعد، آبادانی به سراغ آیدا و سهراب آمد، بانها را با خود برد. اما هرچه اصرار کردند، مثل همیشه پا آن خانه نگذاشت، حتی حاضر نشد، یک چای دم در بخورد. عصر روزی که آمده بود، مادر و آیدا و آیدین را با ماشین در شهر گرداند و گفت که قرار است پنج سال در آبادان بماند، بعد معلوم نیست بروند کدام شهر. آیدین گفت که اگر بخواهد میتواند به آبادان بیاید، انگلیسی یاد بگیرد و پیش آنها بماند. اما آیدین گفت که در شهرستانها ها امکان رشد خیلی کم است. یک مملکت را نابود کردند که تهران را بسازند. پس چه بهتر که آدم برود آنجا و هر کار که بخواهد از آنجا شروع کند. چهره آیدین مبهوت و گرفته بود. ته چشمهاش حالت عجیبی بود. آیدا گفت، انگار آشق شده ای؟ مادر گفت، اگر زن بگیرد، دم و دستگاهش را جدا میکنم که راحت باشند. آبادانی گفت، وقتی قصد دارد وارد دانشگاه بشود، خواهش میکنم مانعش نشوید. آیدین گفت، هرچند که آدم در این خانه پیر می شود، اما سبر میکنم تا خوب آمادگی پیدا کنم. با یک جهش وارد دانشگاه می شودم. آدم وقتی توی همچون شهرستانی تنها باشد دوچار افکار انفعالی هم می شود آبادانی گفت درک می کنم درک میکنم. و از دوران تحصیل خودش در آمریکا صحبت کرد که تنها بوده و چقدر جوانهای بلند پرواز را دوست دارد و قسم خورد که آیدین آدم بزرگی خواهد شد چون بیش از سنش میفهمد. آن شب آبادانی در مسافرخانه خوابید و صبح روز بعد آیدا و سحراب را با خود برد روز بعد مادر باز تنها شد سکوت خانه را گرفت زمان کند میگذشت و مادر افسوس میخورد که یادش رفته است برای آیدا صابون مراغی بگیرد این شلوار بچه را هم جا گذاشته و خدا کند سالم به مقصد برسند محیط خانه همیشه یک نواخت و ساکت بود آدم احساس خستگی می کرد و انگار که گم کرده داشت. نه کسی میآمد نه جنجالی بود، نه جشنی، نه اعضایی. فقط گاه گاه صدای کلاقی از لابلای شاخه های کاج در حیات میپیچید. پدر کسی را به حریم خانه راه نمیداد. اگر رفقاش می‌آمدند در همان حجره یک بشقاب تخمه میگذاشت جلوشان و یا یک چای از دکه کاروان بر براشان میآورد. حتی امون سابر هم به خانه نمیآمد، آنها هم نمیرفتند. پدر میگفت: آدم ارخوری که در کار بچای من دخالت کند حق ندارد بیاید خانه من. وانگهی اگر آن زمان پول مرا بالا نکیشیده بود حالا نصف کاروان مال من بود مادر گفت مگر می شود که قطع رابطه کرد مگر می شود به برادر گفت دیدار به قیامت پدر گفت من شاشیدم به این برادری اگر ببینمش چهار تا لیچار بارش می کنم که حساب کار دستش باشد من میدانم آیدین را پر میکند یادش میدهد که برود دنبال اطفار و نیاید سراغی کسب و کار آخر شعر گفتن هم شد کار با این شعرهای های بند تنبانی که این پسر می میگوید آیدین گاه گاه اموسابر را جلوی میفروشی کلب چوبی میدید که یا میخواست برود تو یا بیاید بیرون همیشه هم مست بود یک بار دست به جیب برده بود و یک دست اسکناس بیرون آورده بود و گفته بود بردار بردار هر چقدر که دلت میخواهد بردار من که می‌دونم تو از پدرت پول نمی‌گیری هر چه باشد برادر خودم است شناسمش پول تو جیبی بهت نمی‌داد که تو را به زانو در بیاورد چند سال است که این شلوار پیچازی و این پالتو را میپوشی پس کی میخواهی جوانی کنی اما یادت باشد عموجان دور این زندگی را خط بکش، برو ادامه تحصیل بده، من مثل شیر ازت پشتیبانی میکنم. هنوز پول را روی کف دست نگه داشته بود. جان امو بردار. آیدین گفت، احتیاجی ندارم امو چان. امو گفت، تعارف نکن، اقلن یک چیزی بردار. به آن طرف برگرداند. حالا انبوه گوشت قبقبش که به سرخی میزد از یقه سفیدش دو پله بیرون زده بود آیدین یک بار احساس کرد که دلش میخواد، بند کراوات اموسابر را براش شل کند گفت ممنونم عمو جان اموسابر گفت دستم را رد نکن من سرم را برگرداندم که هر خواستی برداری آیدین گفت همین قدر که به یاد من هستی ممنونم دستش را با دست پس زد امو پول را در جیب گذاشت و گفت پس اقلا بیا برویم دوتا استکان دیگر بزنیم آیدین گفت من نمی خورم امو, امو گفت خیلی خوب یک وقت دیگر ولی یادت باشد تو آینده خوبی داری من به آینده ات خیلی امیدوارم شانه آیدین را فشرد و گفت گفتی می خواهی بروی دانشگاه؟ آیدین گفت بله امو جان. اما پرسید کدام دانشگاه؟ آیدین گفت گفتم که دانشگاه تهران یا هر جا که قبول شدم. اما گفت خوب است آنجا خوب است. دانشگاه شیراز هم بد نیست مخصوصاً که شیراز حافظ و سعدی دارد مخصوصا شراب خلرش نظیر ندارد. دست آیدین را در دو دستش فشرد و تکان داد و چنان شدید تکان داد که قبقبش لرزید. گفت خدا نگهدار ما که چیزی نشدیم ممو تو به خانشایت چیزی شدی من خیلی به تو امیدوارم در ضمن وقتی بارت را بستی و خواستی بروی بیا پیش من میخواهم یک چک برایت بنویسم که اقل یکی دو سال راحت باشی آنشب آیدین سر صفر گفت که اموسابر را دیده است و پدر یک لحظه به چشم آیدین زل زد و گفت غلط کرده ای. آدین گفت که اموسابر میخواهد هزینه تحصیل یکی دو سالش را بدهد و پدر گفت گوه خورد مرد که دیوانه آه ندارد با ناله صدا کند اگر راست می گوید چرا خانه اجارهی می نشیند. بعد با لحن بسیار ملایمی می گفت خب شازده چه تصمیمی داری؟ آدین گفت دارم خودم را برای دانشگاه آماده می کنم پدر گفت که چه بشود؟ تو دنبال چی هستی؟ بگو بهت بدهم آیدین گفت پدر همه که نباید مثل شما کاسب بشوند همه که نباید میراث پدری را بخورند این همه شغل این همه فکر پدر گفت بحث نکن با من یا میایی یا میروی. آیدین گفت من خیلی وقت صرف کردم پدر حالا دیگر بی است مادر گفت توی این روزگار فقط پول ارج و غرب می آورد. اما تو پدر گفت بگذار برود دنبال اتوار خودش ولی سراغ من نیاید آیدین گفت من هم قصد ندارم بیایم. پدر فریاد زد وقاحت را میبینی بینی؟ شد و راه افتاد در طول اتاق می رفت و می آمد گفت این آخرین حرف من بود از این به بعد ما هیچ حقی به هم نداریم این یک اتمام حجت هست آیدین؟ لحظه در سکوت قدم زد و گفت تو دنبال چی میگردی؟ آیدین گفت دنبال خودم پدر گفت گمشا